والفداء والله انه دائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا خطا توسینه او ارض کتا و ان و تمتئه <متحش> او فیها شام غریبان شهادت جنسوز حضرت امام محمد باقر عليه السلام است. خداوند به حرمت امام پنجوم حضرت باقرالعلوم زیارت با صفا و ملکوتی حضرتش در مدینه شفاعت حضرتش در اخرا قسمت و روزی یکایی که جمع حاضر ما بگرداند به حرمت برکت و قداست سلوات جلی بر محمد و آل محمد <متصفيق> اللهم خوشحالم خوشبختم از اینکه در محظر عزیزانی هستم که تازه پا به سنی گذاشتن که ما شاید خیلی از اون راه رو طی کردیم و خلاص صفحه های دفتر نقاشی عمرمون رو شاید خراب کرده باشیم سیاه کرده باشیم در ابتدای راه چقدر خوبه که آدم با همین محافل، با یاد اهل بیت، با ذکر اهل بیت مسیر و عمرش رو شروع کنه چون شام غریبان امام باغر علیه السلام هست یه روایتی رو من میخونم خدمتتون از وجود مبارک امام باغر علیه السلام که حضرت در بیان نورانی میفرمایند اربع من کن نفیه کمول اسلامو چهار خصلت است که اگر کسی صاحب این چهار خصلت شد خداوند اسلام او را کامل میکند و او این الا ایمانهی ایمانش رو خدا کمک میکنه به درجات عالی برساند و محقت ذنوبهون صاحب این چهار خصلت به برکت این چهار صفت پسندیده تمام گناهانشون پاک می شود و از بین میرود و لقی و هو عنه راون روز قیامت هم خدای خودش رو ملاقات میکنه در حالی که خدا از او راضیه ولو كان بعد یه جمله رو امام باقر علیه السلام میفرمایند خیلی این جمله عجیبه ولو ولوکانه حتی اگر فی ما بین قرنهی الى قدمه زنوبون حتی اگر این شخص از سر تا به پا آلوده گناه باشد خداوند حتی الله تعالیه همه اونها رو پاک میکنه این چهار خصلت مگه چیه که اگر کسی این چهار خصلت رو داشت خدا همه گناهاش رو ندید میگیره روز قیامت با او ملاقات میکنه از او راضیه ایمانش رو بالا میبره اسلامش رو کامل میکنه معلوم میشه که این چهار خصلت چهار خصلت بزرگی است اولین اونها میفرماید الوفا و به مایج علول علا نفسه اولین صفت حمیده که اگر کسی صاحب این صفت باشه خداوند گناهانش رو پاک میکنه اینکه به پیمان بندگی و اهدمون با خدا وفادار بمونیم ما اهدی بستیم با خدا در عالم زر که خداوند خطاب فرمود الا سُبّ رَبّكُم قالو بلا آیا من پروردگار شما هستم ما هم گفتیم بله و الان الانش هم اقرار به عبودیت داریم بعضی ابد عبد خدا نیستن توی این عالم این صفت صفت خوبیه ها بعضیا هستن آلوده به گناه هم هستن اما توی دعای کمیل چقدر به قشنگ ادب اعتراف به گناه رو یاد دادن تجرع تو به جهلی خدایا من اگر یه کاری هم کردم به خاطر جهلم بوده من کسی نبودم بخوام جلوی توی خدا گردن کشی کنم یعنی ممکنه کسی گناهی مرتکب بشه اما اقرار به عبودیتش هنوز داره که من کیم که بخوام جلو تو گردن کشی کنم یه لحظه غفلتی حاصل شد. یه لحظه جهلی حاصل شد. اون لحظه من معصیت تو رو کردم. اقرار به عبودیتت داشته باشیم، وفای به پیمانی که با خدا بستیم داشته باشیم. وفادار بمونیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما آهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه فمن من ينتبر. خیلی ها هستن به این عهدشون تا آخرین لحظه پابند میمونن اگه تو به این عهد پابند موندی فهمیدی که توی این عالم عبد خدا هستی هیچ چیز برای تو بزرگ نمیشه گنده نمیشه مگه خدا امام رضوان الله علیه رو ببینید وقتی که گفتن آقای امریکایی هم میخوان بیان چم دونم چنین کنن چنان کنن ناواشون بیاد ها فیمایشون چطر باز بیاره بیاده کنه فرمود امریکا هیچ قلطی نمیتواند بکند هیچ کاری نمیتونه بکند چی میشه که یه نفر اینطور میشه بعد یه دم هستن تو این دنیا فقط الان تمام مشکلات رو میگن نه امریکا میتونه حل کنه دلیلش اینه که شریک برای خدا قائل شدن کسای دیگر رو دخیل میدونن خدا رو نمیبینن از اون گناه ها نیست که خدا به هیچ وقت بخش نمیبخشه به هیچ وقت آیه داریم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ازال لمن یشا خدا هر گناهی رو ممکنه که ببخشه اما از یه گناه خدا نمیگذره و اون شرکه یعنی فراموش کنی پیمان عبودیت تو که من بنده خدا بودم حالا من اگه بخوام وارد بشم بحث شرک و بحث عبودیت و توحید خودش یه چیزی هستش که ده جلسه حداقلش میطلبه. ولی یه مثال امام صادق علیه السلام میزنه میفرمایند که اگر کسی مثلا بچهش مریض بشه بعد بیان بگن که خب بچه شما خوب شد الحمدلله مریضیش بهتر شد برگرده بگه فلانی اگر فلان دکتر نبود بچه من مرده بود میگه این شرکه مرحوم شهیده در کتاب گناهان کبیرش این اینکه این که مثلا یکی بگه که آقای دکتورین بچه موتور تو خدا خوبش کن اول خدا بعدن شما گین شرکه بچه روش رو به مدرسه مدیر معلم این بچه من سپردم به شما خلاصه اول خدا بعدا شما شرکه بگو اول خدا دوم خدا آخرم خدا بقیه چی کاره خداست که همه کار رو توی این عالم میکنه آتیش اگر خدا بهش امر کنه نسوزون نمیسوزونه اسا کار آتیش سوزوندنه چطور مگیه رو این فرش بیفته میسوزونه روی این کاغذ بیفته میسوزونه اما وقتی خداوند بهش امر میکنه آتشی که قرآن تعبیرش جهنمه یه آتشی فرسنگها در فرسنگها درست کرده بودن یه فرض یه جنگلی رو آتیش بزنن وسطشم آتیشش رو انبوه کنن حضرت ابراهیم رو با منجنیق پرتاب کردن سمت آتش اینقدر آتیشش زیاد بود وقتی حضرت ابراهیم اومد بعدشم خیلی جالب اینم بدونید بد نیست تو بین همه موجودات کره زمین انسان ها که همشون نمرودی شده بودن هیچ کس نیومد کمک حضرت از بین تمام موجودات زنده روی کره زمین یه پرستو اومد کمک آقا حضرت ابراهیم رو میومد پر میکرد پرستو دیدیم تو بهار معمولا زیاد میشه جسش ببینی نه هم دستت گرفتی یعنی خیلی جسهش کچیکیه خیلی جسهش میکرد این تو منقارش آب میکرد می میریخت روی این آتش انبو که مثل جهنم بود گفتن آخه پرستو این یه چهار تا قطر آبی که توی منقار توه چ... کجا ب... حالا کجا میرسه حالا گفت من همینقدر میتونم. تونم کنم تو نگو که مثلا حالا یه امر به معروف نهی از من که چه فایده ای داره همونی یه ذره اثر میکنه. تو نگو حالا یه جمله من بگم چه اثری داره همون یک گنهکار رو از من جلاب گناه بکشی خیلیه تو نگو حالا این یه دونه هزار تومانی من توی صندوق صدقان این پونسد تومنیه و چه اثری داره حالا خیلی اثرها داره صاحب تبریزی صاحب سبک هندی خیلی قشنگ تمثیلاتی که صاحب تبریزی میره خیلی قشنگه واقعا زیبا الحق و ولا کسی هم تا الان رو دستش نتونسته بیاد در خصوص همین هایی که خیلی ریزه و به چشم ما نمیاد حالا مثلا 100 تومن من 1000 تومن من, من تو صندوق صدقات حالا چه فایده ای داره حالا مثلا من 1000 تومنم به فلسطین کمک و حالا چه فایده ای داره حالا 4 تا فقیر اومدن منم 100 تومن بنزار چه فایده ای داره خیلی مثال قشنگی میزنه اینکه دست از کرم به عذر تنک مایگی مدار برگی در آب کشتی صد مور می شود این خیلی قشنگ تشبیه میکنه. میگه تو نگو که حالا یه هزاره من این 500 چه فایدهای داره یه برگی رو که مندازی توی آب میشه کشتی صد تا مرچه خیلی نگاهشون به همین خورد ریزه درستوی گفتن آخه چرا گفتش که من اینقدر میتونم تو یه تذکر میدی بگو من اینقدر میتونم بیشتر نمیتونم آتشی که زبانه میکشید خدا بهش امر کرد تو سر بردن و سلاما خنک شو و خونک شدنی که احساس آرامش کنه توش که میفرمایند بعضی از مفسرین اگر خدا میفرمود که یا نارو کنی بردن و سلام رو نمی گفت، آتش اونقدر یخ میزد که ابراهیم اونجا به قول ما یخ میزد غلی آقای بود تغییر قشنگی می زمستون سوار موتور بود میگفتش که من زمستون آلاسکا میشن زیم بستنی یخی ها. <تصوح> خداوند فرمود بردن و سلامان آتیش که بایستی بسوزونه میشه خونک چاقو تیغ شما روی گوش بذاری میبوره رو پوست بذاری میبوره رو این چرم بذاری میبوره رو پارچه بذاری میبوره خدا بخواد اثر تیغ رو بگیره بگه تو نبایستی ببوری عید قربون نزدیک دیگه هرچقدر زیر گلوی اسماعیل کشید نبورید هرچقدر اونقدری که میگن ابراهیم خلیل چند بره چاقو رو تیز کرد چرا نمی بره هرچی میکشید کشید آخر اصابانه شد چاقو رو محکم زد به سنگ اینقدر این چاقو تیز بود که رد انداخت روی سنگ رد انداخت میگن ندا بلند شد ندا بلند شد الخلیلو ی و نهیم ول ابراهیم خلیل میگه ببر اما چه کنم که خدای جلیل میگه نبور منم فرمان بردار از خدای ابراهیمم شما مطمئن باشه توی این عالم تا خداوند امر نکنه و ازنده هیچ اتفاق نمی افته. نماز رو فعلا میخونی دیگه و ما تسقط من ورقتن الا یا علموها اینجوری دیگه در قرآن داره الا به اذن پیمان عبودیت تو فراموش نکن که با با همه چیز دست خداست منم هیچ کارم که هیچچی هم نیستن چون بعضیا احساس مالکیت میکنن مثلا فکر میکنه که این مالش مال خودشه از خیلیا که با مال مست میشن به تعبیر مولا امیرالمؤمنین مثلا خونش هم جنوب شهر بود یه خونه مثلا متری داشته بعد حالا یه ارسی رسید چه تو شده بالاخره خونش چهارت محل رفته شده بالاشه اصلا اینی که داکومیلش ترک نمیشد آشوراش ترک نمیشد نودبهش ترک نمیشد الان بیا ببین چه وضعیه چه خونهی چه پارتی چه بساتی میدونی چرا اینا اینجوری میشن چون مالک اون ملکو خودش میدونه خدا رو نمیبینه چیه که بعدی علمشون مستشون میکنه یعنی مثلا چند تا ترم از دانشگاه میخونه سن پدر و مادر میشن بی سواد. تا مثلا فلان مطلب میگه میگه شما نمیفهمید من میفهمم شده ها می‌گوی دکتری بودش حالا چهار کلام سواد یاد گرفته و فکر کرده بود که حالا چه خبره اومده بود به تمام که کتب علمای سلف ما شیخ صدوق علامه مجلسی با جسارت تمام می‌گفت این مزخرفات چی اینا نوشتن گفتم که این چطور شما این حرفو می‌زنید میگفت با عقل من نمیخونه آخه عقل تو چقدر هست که حالا به خود بخونه باهاش تا ترم خونده توی دانشگاه فکر کرده همه اینا شدن بیسواد چرا بعضی از زیر علم مستشون میکنه چون مال خدا نمیدونم پیمان و عبودیتشو فراموش کرده فراموش نکن تو ابدی هیچ کاری خدا اگه اراده کنه تمام این علومی که تو ذهنته تمام درسایی که خوندی من تا الان چند تا درس خون چند تا مدرک گرفتی همه اینا تو چند تا سلول خاکستری مغز خدا اراده کنه پاکش کنه کاری داره واسه خدا یا آقایون میگفتش که من رفتم در خونه رفیقم در زدم یه نوجوانی در رو باز کرد گفتم که آقای آقا پدرت هستش کاریش دارم گفت که نه رفتن پیش پای شما بیرون بعیدم میدونم تا دو ساعت دیگه بیان شما از تالی اسم شریفتون که اومدن من بگم فلانی اومده گفت اسمتون من یه لحظه فکر کردم اسمو چیه؟ اسممو یادم رفته بود گوه آقا اسمتون اسمتون چیه من بگم به بابام گوه هرچو فکر کردم اسممو یادم <تصفح> نمی اومد گفتم که من خودم اشهالا می سر میزنم بهش نیم ساعت در خونه جو پیاده رفتم به زینفش شما <تصفح> <تصفح> اسمم چیه؟ یه آقای دیگه بود میگفتش که آقا من تو نمازم حالا مثلا شهرعیش رو می بپرسه ولی خیلی عجیب بود میگفتش شروع کردم نماز خوندم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین هر کاری کردم یادم این نمازی که چند وعده در روز میخونم چقدر من سوره همده از اول عمرم خوندم تو الان ایا که نه بود یادم نمیونم من هر چیه این مرور کنم از اول دوباره بسم الله الرحمن الرحیم باخه نمازام شکستم دیگه که میشی گفتم قیادت نمیومد اگر خواسه چیکار کنی نچیه خدا میخواد بفرمای تو هیچ کاری اراده کنم میگیرم ازت اولین صفت از اون چهار صفتی که حضرت میفرماین اگر به اون وفادار موندی خدا همه گناهاتو پاک میکنه اینه که به اون عهد بندگی خودت وفادار بمونی دو و صدق لسان معناس با مردم راست باشی صداقت داشته باشی بعض زبانشون دائما آلوده به دروغ ها یه <تصفح> <تصفح> جایی من بود چند سال پیش ده سال پیش بودیم آقای بود معاملات املاک داشتش شاور املاک میگه ها آم. بونگا یه آقایی بود ولی خب از اون تیپ آدم های متدهیم بود آدمه هر از چنگو من تو مسیرم بود مثلا سر میزدم یه حالی ازش میبود پیرمرد، خوبی بودن نه هم مدتی خیلی وقت من ندیدمش. بعد تو املاکیشون نشسته بودم یه آقای اومدش توپشم انگار پر بود مثلا بعضی میگن یه آخونده همیشه مثلا مخه ما رو چنین میکنن حالا مثلا ما هم تنها گیرش آوردیم حالا ما ما رو گیر آورده بود شروع کرد به یکی از حرفایی که زدیم بود آجا شما علما شما چرا رو منبرها یه حرفایی میزنید که اینا اصلا نمیشه عمل کرد یه چیز بگید که بشه عمل کرد گفتم خب مثلا ما چی میگیم که نمیشه عمل کرد گفت که شما مثلا بالا منبر میگید که دروغ نگید اینکه خب, خب اینم من نگم دیگه یه بچه سه سالا بپرسی بچه جان دروغو کی میگه دروغو دشمنه خدا خب اینکه که معلومه ایشون برگشت گفت که آخه من تا روزی چل تا پنجاه تا دروغ نگم اصلا کاسبی نمیچرخه نمیچرخه چقدر بیچارم بعضی هم. و یکی از چیزهایی که حضرت امام سجاد علیه السلام به امام باقر علیه السلام فرمود بنیه فرزندم پسرکم با چند نفر اصلا مصاحبت نکن اصلا با اینا حرفم نزن فلا تو صاحب هم فی طریقه یعنی مثلا فلا تو صاحب هم فی طریقه میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمید که از دم این مسجد تا سر نبش این خیابون قرار شد با هم راه برید راه نرید چند دسته رو میگه با اینو رفاقت اصلا نکن دم دم نشون نفس به نفس نشون چرا؟ یکیشون میفرماید ایاکه و المصاحبت الکذاب آدم دروغگو شیخ صدوق رزوان الله علیه میگن ایشون یه هم مباحثه ای داشت که اینو با هم درس و بحث میکردن و هم مباحثه ایش به طلب ها یه هم مباحثه ای دارن صبح رفت در خونهشون اینو صدا بزنه با هم برن مدرسه قدیمه خونه اینجوری اینجور بود خیلی از خونه‌ها مثلا یه گوشه خونه مثلا یه گوشه شمیه طبیلهی می‌ساختن یه مرگ خروسی مثلا گسفندی بزغاله اینا چهار پنش از این بزغاله ها بیرون بودن. خیلیم بزغالات دیدید خیلی ورجهورجه میکنن اینا هم مثل گوسفندا راحت نمیشه جمعشون کرد این یه مش علف تازه دستش گرفته بود همین دوست شیخ صدو میگرفت جلوی این بزغالها اینا بیچاره به هوای اینکه چه علف تازه دنبالش میومدن میومدن میومدن و این در طویله رو باز میکرد این بزغالایی که میرفت اون تو رو میبست علف رو مینداخت کنار من شیخ صدوق برگشت گفت که ها ها فراقم بینی و بینه دیگه از من جداشم منم از تو جدام گفت چرا برای چی آدم مثلا ذریبه هوشیم کمه نمیتونم تفهیم کنم از جهت علمی ضعیفم بهم بگو گفت کسی که از الان به حیوانی دروغ بگوید بیوی هزم حیوان ولی شوی یه بزغاله دروغ بگه این از فردا معلوم نیست به منم راست بگه. یا که ولی کذاب خدا صداقت خیلی دوست داره خیلی معمولا هم دست کسایی رو میگیره خداوند که اینا اهل صداقت باشن اهل درستی باشن حتی تو مسیر بدش بعضی صداقت دارن یکی از علمای بزرگ که تو تهرانشون دست خیلی از آلوده ها و لاتا و آدم که توی منجلا به گناه بودن دستشونو رو میگرفته جون می که خداوند اول از همه دست اون قماربازی رو میگیره که تو قماربازش هم با صداقت وارد بشه تو بدیش هم صداقت داشته باشه بعضی بد بدی میکنن بعضی بدی میکنن اما بالاخره یه جوری این بدیشون اسلوب داره قاعده داره یه دزدی چقدر زحمت کشیده بود که یه صندوق جواهراتی رو بدوزده بعد مدت ها صندوقه رو جواهره دزدید مادش برگردون سمت صاحبش گفتم بابا تو چقدر داشتی نقشه میکشیده گلنه صندوقه رو که باز کردم دمیه آیتالکرسی رو روی پوست آهو نوشته شده روش گذاشته این بنده خدا به این آیتالکرس اعتماد کرده احساس میکرده این قرآن حفاظت از جواهراتش میکنه من دزد مال مردم ممنر نه دوزد ایمان مردم ببین بدی میکنه ها اما بدی کردنش قاعده هایی داره بعضی بدی میکنن بد بدی میکنن تجهی؟ بد بدی میکنن یعنی یک کسی عاشق دختر یکی از شیخ عرب شد هرچی رفت بهش ندادن آخرش برگشت اون شیخ عرب بهش گفت که اگه میخوایی دخترمو بایستی فلان اسب فلان رئیس طائفه رو برای من بیاری به اگه تونستی بیاری این مهریه دخترم من دخترمو بهت میدم عصبش اصلا شهرت داشته این منطقه این گفت چجوری من خونیم عصب روی بیر بیارم عصب اسب... این همیال الانش بعضی یعنی از میلیونی میلیاردی معامله میشن این از اونایی بود که خلاصه میلیاردی معامله میشد هر فکری کرد خلاصه آخر یه روزی اومد سر راه اون شیخ طائفه قرار گرفت که داشت با اسبش میمد خودش رو زد به مریضی که مثلا از ریچای افتاده پاش شکسته اینم گفت چی شده گفت پام شکسته و در مونده شدم و فلان اونو اسب من فرار کرد ایبی نداره بیا سوار مرکب من شو من میرسونم تا یه جایی تا سوار شد چند قدم که رفتن یه نهی زد به اسب او فرار کرد رئیس اون طاقفه برگشت گفت که یه لحظه به ایست من یه جمله فقط باحت دارم اسبه ما دزدیدی بردی ایبی نداره اما سنگ بنای بدی گذاشتی که از این به بعد هر سواری ای یه مونده ای رو توی راه ببینه دیگه اعتماد نمیکنه. کنه اینو میگن بدی کرد اما بد بدی کرد بد بدی کرد سعی کنیم که صداقت داشته باشیم سومین صفت از اون چهار صفتی که امام باغر میفهمن اگه صاحب این سه تا صف چهار تا صفت باشه خدا همه گناهات رو میامرز والله حیا و مایق بهو اند الله و اند الناس حیا کردن از خدا از مردم صفت حیا صفت خیلی خوبیه اینقدر صفت حیا خوبه که وقتی اومد خدمت سید الشهدا عرض کرد انی رجل عاصم و لا اصبر علی المعصیه فا ازنی به موعظتن حسین جان من یه آدمی هستم گناهکار بعد یه قیدی هم آورد که خیلی هم میگه که من گناه میکنم نمیتونم هم گناه ها مترک کنم یه موعظه کن این داروی بشه این جان منو شفا بده حضرت چند تا توصیه فرمودن حالا بخوام وارد بشم طول میکشه یکیشو عرض میکنم فرمودن که اطلب موضعن لا یراک الله و ازنب ما شهد یه جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبینه ها هر چقدر که بخوای اونجا گناه کن کجا بریم که خدا نبینه کش به اندازه زلیخای بطپرست هیای از خدا میکردی که وقتی یوسف و حبس کرد یه پارچه حریری داشت این نخ رو اون بطشون. یوسف کو چیکار کردی؟ گفت من حیا کنم جلوی خدای خودم گناه کنم گناهی بکنه یه فیلم بدی ببینه یه سایت بدی بره درها رو میبنده پرده ها رو میندازه خدا که داره نگاه میکنه که خدا که داره میبینه که امام زمان که داره میبینه امام زمان داره میبینه. بینه یه جلوه از نظارت امام معصوم بگم؟ یه جلوه. یکی از دوستان امام باقر علیه السلام از اون دوستایی که خیلی آدم باتقوایی نبود، میومد آقا رو دوست داشت ولی گفت یعنی واقعا امام معصوم اگر من گناه کنم میبینه. شک کرده بود توی نزا اومد در خونه امام باقر علیه السلام در و در قلباب که کرد کنیز حضرت در رو باز کرد این شروع کرد با کنیز حضرت شوخی بدی کردن شوخی بیجا که شوخی با نامهرم تو روایت داریم به ازای هر کلمهی که شوخی کرد مثلا بینشون تو اون شوخی یک ای چل تا کلمه رد و بدل شد میفهم به ازای هر کلمه شوخی ده هزار سال توی آلم ورزخ نگهیت میدار معطلت می یه شوخی که یه اس داد این MS شامل مثلا 20 کلمه بود به ازای هر کلمش ده هزار سال معطلت میکن. یه شوخی بدی کردم با نامحرم. یک بار صدای امام باقر از درون خانه بلند شد اخرج ادخل لا ام ملک وارد شد ای بی مادر با همین تندی یه لرزه و اندام من افتاد یه اومدم خدمت آقا رنگ رخصارم هم نه همینجا بدنم می لرزید. گفتم آقا به خدا من نمی خواستم جسارت کنم و من فقط میخواستم یه سوال توی ذهن من پاسخ داده بشه که آیا امام معصوم شاهد اعمال ما هست یا نه حضرت این جمله رو فرمودن فرمود تو چی تصور کردی در مورد ما اگر قرار بود که همین در و دیوار و پرده هجاب بین شماست و دیگران برای چشمان نافذ ما اهل بیت هم هجاب باشه پس دیگه چه فرقی میکنه بین ما و شما ما چه فرقی میکنیم با شما و امام زمان مینگره السلام علیک یا ناظر صدرت المنتها حیا صفت خوبیه چهارمین صفت و حسن الخلق مع اهل و الناس صفت چهارمی که فرمود اگر کسی صاحب این صفات باشه خداوند گناهانش رو پاک میکنه مام باقر میفرماید اخلاق خوب اخلاق قشنگ بعضیا اخلاقشون خیلی بده مخصوصا رفقا شما که حالا تو سن نوجوانی و جوانی هستید مخصوصا اخلاق در مقابل پدر و مادر بعضی اخلاقشون خیلی بده تو مثلا میگه فلان چیز با یه اخلاق خیلی بد خیلی بده خیلی درجات عالی معنوی و علمی رسیدن و از یک احترام به پدر به مادر عالم جلیل و حضرت آیت الله و ازما مرعشی نجفی رضوان الله علیه میگه من تمام برکات و درجات علمی مازیه از یه شب دارم مادرم گفتش برو پدرتو از خواب بیدارش کن کارش دارم میگه رفتم دم پدرم خواب عمیقی فرو رفته گفتم چیکار کنم دست بزنم مثلا بلانشو بابا بلانشو دم نه حرمت پدرم میگه صورت من نوجوانی بودم تازه محاسنده رو بودم صورتم رو گذاشتم کف پای پدر همین احساس لمس کف پای پدرم صورتم هم پدرم بیدار کرد متوجه شد که من چیکار کردم چه چی ادبی به خرج دادم ما رو یه دعا کرد تمام مرجعیتم رو من از همونی وقت یه شب دارم همو احترام اخلاق اخلاق تو روایت داریم المؤمنو و خلوون خلو یعنی چی شیرین مؤمن شیرینه من بعض ما بعضی شهر دعوت میشم مثلا به دعوت یکی از علمای عالم اون شهر و اینها مثلا خب در ده یه دهه من اونجا خب مزاهم ایشون هم هستیم مثلا و خب صبحونه با هستیم نهار هستیم شام هستیم حالا مثلا محرم زونی باشه سحر و <تصفح> باور میکنید روز آخر من عزا میگیرم میخوام برم از اونجا بس که اخلاقش قشنگه بعضی مؤمنای ما مثلا برج زهره مارو میمونه. مثلا من پنج دقیقه میشینم کنارش احساس میکنم گدازه آتش این زودتر بلرش مو این کی دیگه <تصفح> مومن شیرینه اخلاق امام باقر علیه السلام چقدر بعضی رو اصلاح میکنه با وسط اخلاق خوب من یه جایی این حدیث خوندم یا آقای تو کتش نمیرفت ماج و و سندش رو سندش رو گفت یعنی تا این حد گفتم بله تا این حد اهل بیت که تحت تبلیغات اموی تا حضرت رو شناخت اومد جلوی حضرت با یه حالت خیلی بدی گفت مسمو اسم چیه؟ حضرت فرمودن انا باغر جسارت بدی کرد به حضرت گفت انتل بقر حضرت فرمودن نگو این حرفو رو اسمم لقبم اینها رو پدر مادرم بذاشته تو اسم پدر مادرم اومد به مادر حضرت هم توهین کرد به پدر حضرت هم توهین کرد حضرت فرمودن این گونه نگو در حق مادرم اینگونه که تو میگی نبوده ولی اگر بوده خدا از سر تقصیراتش بگذره وگرنه خدا از سر تقصیرات تو بگذره اینقدر آقا رعوف ورخورد کردن با حسن خلق میگه دوستشمون لحظه زمین باز بشه من برم بس که خجالت کشیدم یا باقر العلوم کلید دعا تو این آقای بی حرم حرم قلب ما توی دلامونو ببریم مدینه آقای بی حرم حرم قلب ما توی مشغول اعمال زلحجی انحاجیان یعنی نه دیشب نه امشب تو مدینه کسی نبوده برای امام باغر گریه کنه تاریخ را ورق زدم و دیدم به چشم دل همسنگر سه ساله کربلا توی یعنی امام باقر آخرین یادگار کربلا تو همون سن و سال بیبی رقیه بوده که با هم روی خارهای دشت نینو قدم زدم یه عزیزی میگفت رفته بودم سوریه چند سال پیش خدا ریشه وهابیت رو شکن کنه. من رفته بودم یه کاروان اومده بود از آذربایجان. تو حرم بیبی روغیه یه پیرمرد بود، زاکرم نبوده اومد داداوشه. چیزایی میگفتم، نمی‌دونم چی میگفت به ترکی، من آذری بلد نبودم، یه چیزایی میگفت این جمعیت زار زار گریه می‌کردن. می آخر طاقت نیورد، از بغل سوال کردم، گفتم چی میگه این پیرمرد؟ این چرا این مردم زار میزنم کفر رو کرده به مرقد بیبی بی رو میگه رو غیه. بی بیبی جان از ایران کو اومدم سوریه اومدم دمشق اومدم تو حرم تو یه سوال فقط دارم بیبی بی جان اون آبله های کف تو خوب شده یا نه؟ اون آبله های کفپای تو خوب شده یا نه؟ یا باقر ای هم سنگر رقیه همه یه مصائب رو دیده وقتی از دنیا رفت امام باقر السلام امام صادق فرمود حجره ای که پدرم امام باقر تا صبح تحجد میکرد و نماز شب میخون رو کسی خاموش نکنه ها روشن بگذارید چرا؟ برای اینکه نکنه بچه های حضرت شب یا نگاهشون به حجره خاموش میفته داغشون تازه بشه لا یا که یا یا ابا عبدالله آقا جان پس چه کشیدن بچه های حسین چهل منزل سر بابا رو بالای دیزه دیدن صلی الله عليك یا مظلوم یا عبا عبدالله حسین حسین کم ایام مسلمیه و فصل عاشقی محرم داره شروع میشه از همین شبای سی کاسه گدایی رو محیا کن برات رو شب عاشورا نایت فرمود امام صادق علیه السلام پدرم امام باقر در طول دو تا دندانشون جدا شده بود میان پارچه سپیدی پیچیده بودن فرمود پسرم صادقم هر وقت از دنیا رفتم میخوام که تمام اجزای بدنم میان قبر باشه لذا این دو دندانی که از من جدا شده کنار کفن من بگذاره ارزمین امان از دل زینب ای مصحف ورق ورق ای روح پیکر حسین ای جمله از امام زمان روزه من باش فرمود: السلام علی اسباع المقتون سلام بر انگشت بریده به اسد اصد گفتن خدا, خدا چرا علی ابن حسین نمیاد اولین مشت خاک رو به بدن, بدن بابا, بابا بریزه دیدن اطراف قبر یه چیزی رو پیدا کرده بزن میبوزه بزن ای به چشمی کشه خدا تکه یه همین نور مشعل رو نزدیک کردن دیدن انگشت بریده بابا این صدا برکرگران بینال حرمه از عمق جان صدا بزن یا حسین